قاسلی چهارم تلقیین به خود. خود تلقیینی وسیله‌ای برای تاثیر گذاشتن بر ذهن نیم خودآگاه. گام سوم در جهت دستیابی به ثروت خود خود خودتلغینی اصطلاحی است که در مورد همه ی و همه محرکهایی که فرد به خود می دهد و از طریق حواس پنجگانه به ذهن می رسند به کار می روید. به عبارت دیگر خود خودتلغینی یعنی تلغین کردن به خود یک عامل ارتباطی است بین آن بخش از ذهن که فکر آگاهانه در آن روی می دهد و بخشی که محل عمل برای ذهن نیمه خداگاه است از طریق افکار قالبی که فرد اجازه می‌دهد در ذهن نیمه خداگاهش باقی بماند، اصل خود تلقینی به صورت اختیاری به ذهن نیمه خودآگاه می‌رسد و با این افکار بر آن تأثیر می‌گذارد. این افکار اما از اینکه منفی یا مثبت باشند، غیر جسمانی هستند. هیچ فکری، اما از منفی یا مثبت، نمی‌تواند بدون کمک خود وارد ذهن نیمه خداگاه شود. به استثنای فکر‌هایی که از محیط گرفته می‌شوند، به عبارت دیگر همه برداشت‌های برداشت های حسی که از طریق حواس پنجگانه ادراک می شوند به وسیله ذهن مبتنی بر تفکر خداگاه متوقف می شوند و بسته به خاست فرد می به ذهن نیمه خداگاه فرستاده یا رد شوند. بنابراین قوه خداگاه به عنوان یک نگهبان برای ذهن نیمه خداگاه عمل می کنند. طبیعت انسان را طوری آفریده است که با حواس پنجگانه بر چیزی که به ذهن نیمه خداگاه می رسد، کنترل مطلق داشته باشد. البته این بدان معنا نیست که انسان همیشه این کنترل را اعمال می کند. انسان در اکثر موارد آن را اعمال نمی کند و این علتان است که چرا خیلیها با فقر زندگی می کنند. به یاد بیاورید که ذهن نیم خداگاه را به زمین حاصل خیزی تشخیص کردیم که اگر بزرگهای محصولات مطلوب تر در آن کاشته نشوند، علفهای حرز به وفور در آن رشد خواهند کرد. خود تلقینی عامل کنترلی است که فرد از طریق آن افکار خلاقانه را به صورت اختیاری به خورد ذهن نیمه خداگاه می می‌دهد در شش مرحله‌ای که در فصل قبل در مورد میل توصیف شد آموختید که میل به پول را که روی کاغذ آورده اید روزی دو بار با صدای بلند بخوانید و خود را صاحب پول ببینید و احساس کنید با پیروی از این دستورات، هدف میلتان مستقیما به ذهن نیمه خداگاه و با روحیه مبتنی بر ایمان مطلق منتقل می شود. با تکرار این رویه، شما به صورت اختیاری، عادت فکری ایجاد می کنید که به تلاشایتان در تبدیل میل به معادل پولیش کمک می کنند. قبل از اینکه به مطالعه ادامه دهید، به گامهای ای که در فصل دو توصیف شد برگردید و آنها را دوباره به دقت بخوانید. سپس چهار دستورالعملی را که برای سازماندهی گروه ذهن متفکر در فصل برنامه ریزی سازماندهی شده توصیف شده اند به دقت بخوانید. البته با مقایسه این دو نو دستورالعمل با آنچه در مورد خود تلقینی بیان شده است، شما خواهید دید که این دستور الامل ها مستلزم کاربرد اصل خود تلقینی هستند. بنابراین به یاد داشته باشید وقتی میلتان را با صدای بلند به زبان می آورید، از طریق آن تلاش می کنید به یک پول باوری برسید. صرفاً به زبان آوردن کلمات مهم نیست، مگر اینکه هیجان یا احساس را با کلمات ترکیب کنید. اگر بدون اینکه هیجان و ایمان را با کلماتتان ترکیب کنید، فرمول مشهور امیل کوه را میلیون میلیونها بار تکرار کنید، نتایج مطلوبی را تجربه نخواهید کرد. آن فرمول به این شرح است. روز به روز از همه لحاظ بهتر و بهتر می شوم ذهن نیمه خداگاه شما فقط افکاری را شناسایی و بر روی آنها عمل می کند که به خوبی با هیجان یا احساس ترکیب شده باشند تکرار از چنان اهمیتی برخوردار است که عملا در هر فصل باید مورد توجه قرار گیرد چون عدم شناخت این نکته علت اصلی آن است که اکثر افرادی که سعی می کنند اصل خود تلقینی را عملی کنند نتایج مطلوبی کسب نمی کنند. کلمات ساده و غیر هیجانی بر ذهن نیمه خداگاه تأثیر نمیگذارند. مادامی که یاد نگرفته باشید که با افکار یا کلمات به زبان آورده شده ای که با ایمان به خوبی هیجانی شده اند به ذهن نیمه خداگاهتان دست پیدا کنید به نتیجه قابل کاربردی نخواهید رسید. اگر اولین باری که سعی می کنید تان را کنترل و هدایت کنید موفق نمیشوید، سرت نشوید به یاد داشته باشید، نمی شود چیزی بگیرید بدون اینکه چیزی بدهید. توانایی در رسیدن به ذهن نیمه خداگاه و تأثیر گذاشتن بر آن قیمت خودش را دارد و شما باید آن هزینه را بپردازید. حتی اگر بخواهید فریب کاری کنید، نمی توانید هزینه ی توانایی در تأثیر گذاشتن بر ذهن نیمه خداگاه تانعبارت است از، پشتکار مستمر در عمل به اصولی که در اینجا توصیف میشوند شما نمیتوانید با هزینه پایین به توانای دلخواهتان برسید شما و فقط شما باید تصمیم بگیرید که پاداشی که برای آن تلاش میکنید یعنی پول باوری، ارزش هزینه‌ای که برای آن میپردازید را دارد یا خیر خیرتمندی و زیرکی به تنهایی پول را جذب و حفظ نخواهد کرد مگر در موارد نادری که قانون میانگینها به نفع جذب پول از طریق این منابع باشد. روش جذب پول که در اینجا توصیف می شود به قانون میانگینها ها بستگی ندارد. این روش برای همه به یک شکل عمل می کند. همان اثر بخشی را برای یک نفر دارد که برای دیگری دارد. وقتی شکست تجربه می شود، این فرد است که شکست می خورد، نر روش. اگر امتحان کنید و شکست می خورید، آنقدر تلاش کنید که بالاخره موفق شوید. توانایی شما در استفاده از اصل خود تلقینی تا حد زیادی به این بستگی دارد که ظرفیت داشته باشید که آنقدر بر روی میل مورد نظر تمرکز کنید تا آن میل بشود تمام فکر و ذکرتان. اجازه بدهید در اینجا پیشنهادهایی برای استفاده اثربخش از تمرکز ارائه دهیم. وقتی شروع می کنید به انجام اولین گام از این گام های ششگانه یعنی مقدار پولی را که می خواهید دقیقا در ذهنتان مشخص کنید با تمرکز یا تثبیت توجهتان و با چشمان بسته افکارتان را روی مقدار پولی که می خواهید نگه دارید تا اینکه بتوانید ظاهر فیزیکی پول را واقعا ببینید این کار را حداقل روزی یک بار انجام دهید. وقتی این تمرین‌ها را انجام می‌دهید، از دستورالعمل‌هایی که در فصل مربوط به ایمان بیان شده اند پیروی کنید و خودتان را واقعا صاحب پول ببینید. مهمترین نکته این است که ذهن نیمه خداگاه هر دستوری که از ایمان مطلق صادر شده باشد می‌گیرد و بر اساس آن عمل می‌کند. با این حال، دستورات قبل از اینکه به وسیله ذهن نیمه خداگاه تفسیر شوند، غالبا باید چندین و چندین و چندین بار تکرار شوند. سپس کاری می کنید که ذهن نیمه خداگاهتان باور کند که شما باید پولی که تجسم می کنید را داشته باشید و این پول منتظر آن است که شما آن را از آن خود کنید و ذهن نیمه خداگاهتان باید برنامه های عملی برای کسب پولی که مال شماست را در اختیار شما بگذارد فکری که در پاراگراف قبلی برای تخیلتان پیشنهاد شد را در نظر بگیرید و ببینید تخیلتان چه کار میتواند بکند یا چه کار خواهد کرد که برنامه عملی برای کسب پول از طریق تبدیل میل ارائه دهد. منتظر برنامه مشخصی نباشید که با آن بخواهید خدمت یا کالاها را در قبال پولی که تجسم می کنید کنید. بلکه فوراً خود را صاحب پول ببینید. طوری که در عین حال می‌خواهید و انتظار دارید که ذهن نیمه خداگاهتان برنامه یا برنامه‌هایی که نیاز دارید را ارائه کند برای این برنامه‌ها گوش به زنگ باشید و وقتی ظاهر شدند آنها را فوراً عملی کنید وقتی برنامه‌ها ظاهر شوند احتمالاً از طریق حس ششم و به شکل الهام در ذهنتان چراغ خواهند زد ممکن است این الهام یک تلگرام یا پیام مستقیمی از هوش بیکاران تلقی شود همچنان که این الهام را دریافت می کنید، با آن با احترام برخورد کنید و بر اساس آن عمل کنید. اگر چنین نکنید، ضربه مهلکی به موفقیتتان وارد خواهد شد. در گام چهارم از این گام های ششکانه آموختید که برای عملی کردن میلتان یک برنامه مشخص تدوین کنید و فوراً شروع کنید به عملی کردن برنامه اتان. باید این دستور العمل را به شیوه‌ای که در فصل قبل توصیف شد دنبال کنید. وقتی برنامه پول درآوردن از طریق تبدیل میل را تدوین می کنید، به عقلتان اعتماد نکنید. عقل هیچ کس کامل نیست، علاوه بر این قوه تعقل شما شاید تنبل باشد و اگر کاملاً با آن اتكا کنید و وابسته باشید، شاید معیوستان کند. خلاصه دستورالعمل ها اینکه در حال حاضر مشغول مطالعه این کتاب هستید، نشان می دهد شما به صورت جدی دنبال دانش و شناخت هستید. همچنین نشان می که شما شاگرد این درس هستید. اگر فقط شاگرد باشید، شاید خیلی چیزهایی که نمی‌دانستید را یاد بگیرید، ولی فقط با اتخاذ رویکرد مبتنی بر توازو و فروتنی است که چیز یاد خواهید گرفت. اگر تصمیم بگیرید، به بعضی از این دستورالعمل عمل کنید، ولی از عمل به برخی دیگر قفلت یا امتنا کنید، شکست خواهید خورد. برای اینکه به نتایج رضایت بخشی برسید باید به همه دستورالعمل ها با روحیه مبتنی بر ایمان عمل کنید دستورالعمل هایی که در رابطه با این ششگام در فصل دوم ارائه شده اند حالا به صورت خلاصه بیان شده و اینگونه با اصول ارائه شده در این فصل ترکیب می شوند نخست به نقطه آرامی ترجیحا شب هنگام در بستر بروید که کسی مزاحمتان نشود چشمهایتان را ببندید و با صدای بلند طوری که صدای خودتان را بشنوید مقدار پولی را که میخواهید محدوده زمانی برای کسب آن و توصیفی از خدمات یا کالایی که در قبال آن پول میخواهید بدهید را تکرار کنید. همچنان که به این دستور عمل ها عمل می کنید، خودتان را صاحب پول ببینید. به عنوان مثال: فرض کنید میخواهید تا ابتدای ژانویه 5 سال بعد 550 هزار دلار پول درآورید میخواهید خدمتی که در قبال این پول ارائه میدهید فروشندگی باشد. بیانیه مکتوب هدفتان باید شبیه مورد زیر باشد. من تا روز اول ژانویه سال فلان صاحب هزار دلار خواهم شد و آن را به تدریج در خواهم آورد. اثر بخشترین خدمت و با ترین و با کمیتترین خدمتی که میتوانم در قبال این پول انجام دهم فروشندگی است. من باور دارم که به این پول خواهم رسید ایمان من آنقدر قوی است که می توانم این پول را جلوی چشم هایم ببینم با دست هایم می توانم آن را لمس کنم این پول منتظر است به من منتقل شود و به همان نسبتی که خدمت ارائه می دهم پول دریافت خواهم کرد منتظر برنامه هستم که این پول را با آن به دست آورم و وقتی این پول به دست داید آن برنامه را دنبال خواهم کرد دوم این برنامه را شب و روز تکرار کنید تا پولی که میخواهید به دست آورید را در تخیلتان ببینید. سوم، نسخه ای مکتوب از تان تهیه کنید و آن را جایی بگذارید که شب و روز آن را ببینید و قبل از اینکه به بستر بروید و بعد از اینکه از خواب بیدار میشوید آن را آنقدر بخوانید که آن را از بر کنید. همچنان که این دستورالعملها را عملی می‌کنید، به یاد داشته باشید که اصل خود تلقینی را به منظور دستور دادن به ذهن نیمه خداگاهتان عملی کنید. همچنین به یاد داشته باشید که ذهن نیمه خداگاهتان فقط بر اساس دستورالعملهای عمل خواهد کرد که هیجانی شده باشند و با احساس همراه باشند. ایمان قویترین و ترین هیجان است. به دستورالعمل‌هایی که در فصل ایمان ذکر شدهاند عمل کنید. ممکن است این دستورالعمل‌ها در ابتدا انتظایی به نظر برسند. نگذارید این عذیتتان کند. این دستورالعمل‌ها ها هرچقدر هم در ابتدا غیرعملی به نظر میرسند با آنها عمل کنید. اگر روحیه و عملتان همانطوری باشد که به شما آمخته شده است زمانی خواهد رسید که کل دنیای جدید قدرت برای شما آشکار خواهد شد. در رابطه با همه ی ایده های جدید شکگرایی مشخصه همه ی امسان هاست اما اگر دستور هایی که در بالا ذکر شد را عملی کنید شکتان جای خود را به زودی به باور خواهد داد و این باور به زودی به ایمان مطلق تبلور پیدا خواهد کرد در نتیجه به نقطه خواهید رسید که واقعا میگویی من ارباب سرنوشتم هستم من فرمانده روحم هستم بسیاری از فیلسوفان تصریح کردند که انسان ارباب سرنوشت زمینیش است. ولی اکثر آنها نتوانستند بگویند چرا او ارباب است. علت آن این است که انسان میتواند ارباب موقعیت زمینیش باشد و مخصوصا موقعیت عالی او کاملا در این فصل تشریح میشود. انسان میتواند ارباب خودش، ارباب محیطش شود چون این قدرت را دارد که بر ذهن نیمه خداگاه خود تأثیر بگذارد و از این طریق همکاری هوش بیکران را جلب کند. حالا دارید فصلی را می که شالوده این فلسفه است. اگر بتوانید میل را به پول تبدیل کنید، دستور هایی که در این فصل گنجانده شدهاند فهمیده می شوند و با پشت کار عملی می شوند. عملکرد واقعی تبدیل میل به پول مستلزم استفاده از خود تلقینی به عنوان عاملی است که فرد به واسطه آن به ذهن نیمه خودآگاه میرسد و بر آن تاثیر میگذارد اصول دیگر صرفاً ابزارهایی هستند که خود تلقینی آنها عملی می شود این فکر را در ذهن داشته باشید تا همیشه از نقش مهمی که خود تلقینی در تلاش های شما برای کسب پول از طریق روش های توصیفی در این کتاب دارد آگاه باشید این دستور الامل ها را طوری عملی کنید که گویی شما یک بچه کوچک هستید مقداری از ایمان یک بچه را به داخل تلاشتان تزریق کنید نویسنده این کتاب بسیار دقت کرده است که هیچ دستورالعمل غیرعملی توصیه نشود چون او تمایل صادقانه‌ای داشته است که کمکی بکند بعد از اینکه کل کتاب را خواندید به سراغ این فصل بیایید و این دستورالعمل را در روحیه و در عمل به کار گیرید. کل این فصل را هر شب با صدای بلند بخوانید تا اینکه کاملا متقاعد شوید که اصل خود تلقینی صحیح است و هرچه را ادعا کرده عمل می کند. همچنان که مطالعه می کنید زیر هر جمله ای که از آن خوشتان میآید خط بکشید. به دستور العمل فوق مو به مو عمل کنید تا راه را برای شناخت کامل و تسلط بر اصول موفقیت باز کنید.